قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود من دیوانه چو زلف تو رها می کردم هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود یا یاربین آینه حوز چجو هر دارد که در او آه مرا قوت تاثیر نبود طرز حسرت به در میکده ها بر کردم چون شناسای تو در سومه یک پیر نبود نازنین طرز ترز در چمن ناز نروز خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود تا مگر همچون سباب باز به کوی تو رسم حاصلم دوش به جز ناله شبگیر نبود آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که شوشم جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود آیتی بود عذاب اندوه حافظ بی تو که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود